آقل به چه امید در این شوم سرا، بر دولت او نهد دل از بحر خدا، هرگاه که خواهد بنشیند از پا، گیرد اجلش دست که بالا بنما قرآن که به این کلام خانندورا، گهگاه نبردوام خانندورا، در خط پیال آیتی روشن هست که در همه جا مدام خانندورا. گر می نخوری تنه مزن مستان را گر تو به دهت توبه کنم یزدان را تو فخر بدین کنی که من می نخورم سد کار کنی که می غلام مستان را هچند که رنگ و بویزی باست مرا چون لاله رو خود سر بالاست مرا معلوم نشد که در طرف خانه خاک نقاش من از بحر چه آراست مرا